حق جان جهان است و جهان جمله بدن و وسناف ملایکه حواس این تن افلاک و عناصر و موالید اذا توحید همین است و دگرها همه فن دیشب ز سر صدق و صفای دل من در میکده رو فضای دل من جامی به من آورد که بستان و بخور گفتم نخورم گفت برای دل من کاهی به نهد پیش تو گردون گردن، کار تو بود همیشه جان پروردن، همچون منت اعتقاد باید کردن، میخوردن خوردن و اندوه جهان ناخوردن. در عالم خاک از کران تا به کران، چندان که نظر کنند صاحب نظران، حاصل ز جهان بی وفا چیزی نیست، الا میلعل و خوش حشبسران.